دهی بر لب جوی بانگاری موزون من بودم و ساغر شراب گلگون در پیش نهاده صدفی از گوهرش نوبت زن صبح ساده بیرون. شرمت نهاید از این تباهی کردن زین ترک عوامه رو نباهی کردن گیرم که سراسر این جهان ملک تو شد جز آن که کنی چه خواهی کردن. رندی دیدم نشسته بر خشک زمین نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین، نه حق، نه حقیقت، نه شریعت، نه یقین، اندرد و جهان کراب راب زهره این. عمی متفکرند در مذهب و دین، جمعی متحیرند در شک و یقین، ناگاه منادهی براید که بی خبران را نه آنست و نه این.